و از حکومت‌های ظالمان محضون مباش محزون مباش ما, ما, ما برگشتیم و ان هر پارچه ورقت را با خون‌های مطهر خود رنگین می‌سازیم برگشتیم le droit de nous massacrer au nom de votre lit verte et chère à vos yeux pour nous tous vos bien vos dit nous rien de sacré votre sang coulera pour vos crimes ô oh dieu pendant que vos chasseurs rafale bombarde vos plus intelligents sans honte regarde vos médias cachent tout les atrocités nos morts n'ont pas le mérite d'être cités vous êtes des meurtriers manipulateurs le mensonge et Me de vos orateurs attention nous avons de quoi nous défendre des soldats bien de armés prêts à vous descendre vous vous octroyez le droit de nous massacrer au nom de votre lit verte et cher à vos yeux pour nous tous bien vos bienvaux Vins rien de sacré votre sang coulera pour vos crimes odieux vos lois permettent des desâtscolatéraux vos soldats nos enfants et sont des héros. Vous pleurez à chaudes larmes pour quelques morts, quant aux milliers de tués, pas le moindre remords. Vous dupez le monde par votre éloquence, tout en légalisant votre délinquance. Attention me semble, prêt à rendre les coups, tous nos sabres sont liés. Mais pour, trancher, Mais des pour coups, trancher des coups Vous vous octroyez le droit de nous massacrer Au nom de votre liberté chère à vos yeux Pour nous tous bien, vos biens vaut, rien de sacré Votre sang coulera pour vos crimes odieux Attention des soumis sont prêts à s'exploser prêt à répondre au mal que vous avez causé attention bientôt vos routes seminées par des frères bien fort mais et déterminés attention votre vin est déjà panifié nos guerriers sont partout prêts à se sacrifier attention nos orfres laprennent de l'âge. il nourrissent leur vent danse dans la rage dans la rage vous vous octroyez le droit de nous massacrer au nom de votre lit chère et cher à vos yeux pour nous tous vous bien vos vit nous rien de sacré votre sang coulera pour vos crimes ô أحمدك اللهم ربي وأسألك على رتب الشهادة وأستغفرك لما تعلمه مني وأنت عالم الغيب والشهادة وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستودع عندك هذه الشهادة وأصلي وأسلم على من له السيادة والقيادة والريادة و على آله و صحبه اهل الجهاد و العباده اما بعد در خطبه گذشته از اهمیت تکفیر صحبت کردیم و گفتیم که نباید باب تکفیر را بست و همچنین نباید بابش را کاملا باز کرد گفتیم اقرار و اقرار از بزرگترین دلایل می باشد و اما با شهادت شروطی وجود دارد که باید در شهود موجود باشد اسلام، حقل، بلوغ و عدالت در مورد عدالت ابن قدامه مقدسی در کتاب المغنی می‌فرماید که باید از گناهان کبیره و صغیره و خوارم مروت اجتناب بکند و این همان عدالت می باشد. اگر این شرطها در شهود یافت شود پس در این وقت ما به کفر فلان شخص حکم می کنیم. اما مسئله بعدی نصاب شهادت می باشد. که یک شاهد کافی نمی باشد. بلکه باید دو شاهد عادل وجود داشته باشد جز در اثبات حد زنا و یا جریمه زنا که باید چهار شاهد موجود باشند اما در ارتداد و دیگر چیزها دو شاهد عادل کافی است در حدیثی که در صحیحین وارد شده همانا نبی صلی الله علیه و وسلم ابن عبیر را مؤاخذه نکرد در حالی که رأس منافقین بود و زید ابن ارقم شهادت داده بود که او قول کفری را بر زبان آورده و گفته لا رجعنا الی المدینه لا مِنْهَا الاعز منها الاذل سوره المنافقون آیه هشت عبدالله ابن عبای این قول کفری را به زبان آورد و بدون شک این قول قول کفری می باشد چگونه به رسول الله صلی الله علیه وسلم می گوید انه الازل والعیاد بالله و همانطور که می دانید ناسزا به نبی صلی الله علیه وسلم یا استهزاب او و یا کوچک کردن او از شنیترین مکفرات هست عبدالله ابن ابی این قول را با شهادت زید ابن گفته بود ولی چون نصاب شهادت کامل نبود و با اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم از طریق وحی نسبت به این قضیه علم داشت ولی قضاوت نکرد چرا؟ چون احکام شرعی با بیانه صادر می شود و این چنین در شریعت الله تعالی مقرر شده همانطور که در حدیث ابن عباس وارد شده فرمود و اینم البینتو على المدعی والیمین على من انکر پس حتما باید بینه شرعی وجود داشته باشد و با دروغ و گمان نمی شود حکم کرد حتی اگر در چیزی یقین جازم پیدا کردیم نمی حکم بکنیم بلکه باید بلکه با بینه های شرعی مقرر در کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم می توانیم حکم بکنیم پس گفتیم اولا با اقرار یعنی شخص خودش اعتراف و اقرار کند که من چونین فعل و یا قولی را مرتکب شده هم دو من با شهادت که همان بیانه های شرعی می باشد. و سه من با استفازه که استفاظه همان اشتهار یا شهرت می باشد. به عنوان مثال تمامی مردم وجود کشوری مثل چین را تصدیق می کنند. آیا کسی از آنها به چین سفر کرده؟ نه سفر نکرده از کجا این،, این را شناخت و از کجا دانست که کشور چین وجود دارد به وسیله شهرت و حتی در بین آنها کسی به چین سفر نکرده و چین را ندیده که عادل هم باشند و به آنها خبر بدهند. اما به وسیله شهرت کشور چین به بودن این کشوری پی بردهند. این در مورد اثبات تهمت بود. اما به مجرد اثبات تهمت نمی توانیم حکم را صادر کنیم. چرا که بعد از اثبات تهمت باید کفر بودن این تهمت را اثبات کنیم؟ پس گام دوم در اثبات تهمت، اثبات کفر بودن و یا مکفر بودن تهمت است. که این با دو طریق اثبات می شود. طریق اول، اینکه شخصی قول و یا فعل سریح را انجام بدهد. که این شناخته می شود به وسیله کتابهایی که علما در مورد ارتداد، و مناطات و اسباب آن به برشته تحریر درآورده اند مانند استهزا به دین و یا به شعائر دین و یا خواندن نماز فرض بدون تهارت به صورت عمدی و غیره که اهناف میگویند کفر اکبر است و میگویند این استهزا به دین هست ولی جمهور با این قول موافقت نمی کنند و میگویند این صریح نیست و اگر مقصودش از این عمل استهزا باشد بله در نزد ما کافر هست وگرنه ما کافر نیست برخی از مرجعه های هم احتجاج می کنند به حدیث حاطب ابن عبی بلتعی بل بر عدم تکفیر کسانی که کفار را بر علیه مسلمین نصف می کنند. اینجاست که جواب می دهیم اولا نصف کفار بر مسلمین کفر اکبر است. و انسان با این عمل از اسلام خارج می شود دقت کنید زمانی که حاتب ابن ابی بلتعی به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد همانطوری که در صحیحین وارد شده عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه گفت رهایم کن تا گردن این منافق را بزنم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم و در روایت حاکم آمده که فقط کفر کنید اگر حاتب رضی الله تعالی عنه زنا کرده بود و یا قتل کرده بود و یا سرقت کرده بود آیا عمر میفرمود دعنی اضرب عنق هذا المنافق یا کافر یا فقط کفر آیا این را می گفت؟ نه نمی گفت چون این چیز متقرری بود در نزد صحابه که این اعمال از جمله اعمالی نیست که مخرج از المله باشد بلکه از جمله کبائری است که انسان را از اسلام خارج نمی کند و عمر رضی الله تعالی عنه نمی گفت که اجازه بده گردن این منافق را بزنم یا این کافر را و یا فقط کفر پس اینجا نتیجه می گیریم که این از اعمالی است که مسلمان را از اسلام خارج می‌کند و همچنین زمانی که حاتب ابن ابی بلتعه آمد اولین چیزی که گفت چه بود گفت والله یا رسول الله ما فعلته ارتدادا عن دینی اگر حاتب زنا یا سرقت کرده بود آیا می‌گفت والله یا رسول الله ما فعلته ارتدادا عن ديني این را چرا چون که این اعمال در نزد صحابه از جمله اعمال ارتداد نبودند و از نواقض اسلام هم نبودند بلکه از جمله گناهان کبیره بودند و اما زمانی که این جمله را فرمود در اینجا دلیلی است بر اینکه مناصرت کفار از مناطات رده محسوب می‌شود که در اظهان صحابه نقش بسته بود اما چون فعل حاتب صریح الدلاله نبود بلکه زنی و دلاله بود و این را زمانی که به رساله حاتب که برای کفار فرستاده بود رجوع میکنیم میفهمیم کما اینکه در الواقدی و غیره آمده که متن نامه بدین صورت بوده بسم الله الرحمن الرحیم من حاطب ابن أبي بلتعه إلى من يصله الكتاب من قريش اما بعد فقد اتاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش كليل يسير كالسيل والله لو اتاكم وحده، لنصره الله عليكم وإن خطاب امروز هم بسیوری از مجاهدين به منظور ترساندن دشمن به کار میبرند و حتی در گذشته هم به کار برده شده همانطوری که از معتصم و یا هارون الرشید و غیره روایت شده به عنوان مثال میگویند با جیشی به پیش شما میآیم که اولش پیش شما باشد و آخرش در نزد من پس نس هاتب یا حاتب یا فعل حاتب سریح و نبود بلکه زنی و دلاله بود به دلیل اینکه گفت والله لو اتاکم وحده لنصره الله علیکم والله اگر به تنهایی نزد شما بیاید قطعاً الله تعالی نصرت میکند او را بر شما به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کرد از حاتب ولی اگر صریح می بود از او سوال نمی کرد. شخصی پیش قاضی می رود و می گوید من به همسرم گفتم که به خانه پدر و مادرت برو. اینجا قاضی از قصد این شخص سوال می کند. آیا قصد طلاق داشته یا نه؟ چرا که این جمله صریح نیست در مورد طلاق؟ بلکه زنی و محتمل هست و احتمال طلاق هست و احتمال غیر طلاق. ولی اگر مرد بیاید و بگوید که به همسرم گفتم تو طلاق هستی، اینجا دیگر قاضی سوال نمی کند. چون این لفظ سریحی است. همانطور هم در مورد مکفرات باید تحقیق صورت بگیرد و سوال کرده شود. البته بعضی از مکفرات هم وجود دارند که نیازی به تحقیق نیست. مثل کسی که به الله تعالی دشنام میدهد. دهد. اینجا دیگر زمانی که اصل تهمت برایمان ثابت شد حالا چه با اقرار باشد و چه با شهادت و یا با استفازه بعد از این دیگر از قصد چونین شخصی سوال نمی شود و در مورد اثبات فعل مکفر هم باید بگوییم که این فعل فعل سریحی برکوف می باشد. شخصی میآید و میگوید که عمر کافر است میگویم چگونه حکم به کفر کردی بر او؟ جواب می دهد اولا او خودش اعتراف کرد که من این کار را کردم و شاهدین هم شهادت داده و شاید استفازه هم برای کار او باشد و فعلی هم که انجام داده سریح می باشد. سپس می فرسیم دلیلت از قرآن و سنت بر این فعل مخرج الملل چه بوده؟ طب جواب میدهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضكم رقاب بعض خب اینجا متوجه می شویم که عمر قتل کرده اینجا برای آن شخص تهمت اثبات شد ولی مکفره بودن فعل او که قتل بوده ثابت نشد چرا که قفل از جمله اعمال مکفره نیست بلکه از گناهان کبیره می باشد. قال الله تبارک و تعالی و این طائفتانی من المؤمنین. سوره حجرات. الله تعالی این دو طائفه را مؤمن نامگذاری کرده. همچنین در مسند امام احمد وارد شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود این ابنی هذا سید عن الحسن. و سیصلح الله بهی بین فیعتین عظیمتین من المسلمین پس باید تهمت با تمام جوانبش اثبات شود اولا اثبات تهمت و بعد اثبات مکفره بودن این تهمت اما چگونه اثبات میکنیم که این عمل مکفره است؟ این دو حالت دارد. حالت اول با دلیل از قرآن و سنت ثابت می شود که کفر مخرج عن المله است. حالت دوم شخص متلبس به کفری شده که سریح و دلاله می باشد. مانند استهزا یا کوچک کردن نبی العیاد بله و این از کتاب و سنت برای ما ثابت شده. اما اگر شخصی در زمان قراءت حدیث حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم با دست خودش اشاره کند این نوع اشاره همانطوری که قاضی عیاض رحمه الله ذکر کرده صریح الدلاله نیست بلکه محتمل و دلاله می باشد بعد از اثبات تهمت وجود شروط می آید که توفر شروط و یا وجود شروط به سه قسمت تقسیم می شود شرط اول شرط در فاعل است که برعکس موانع می باشد به عنوان مثال یکی از موانع تکفیر اکراه می باشد از شرط های فائل اختیار می باشد که شخص مختار باشد در فعل و یا قول مکفری که انجام داده ولی اگر مکره باشد این مانعی از موانع تکفیر می باشد شرط دوم شرط در خود فعل می باشد که باید اثبات شود که مکفره هست که در بحث اثبات مکفره بودن تهمت شرط دادیم و شرط سوم شروط در اثبات فعل می باشد که این هم در بحث اثبات اصل تهمت توضیح دادیم و گفتیم که یا با اقرار و یا با شهادت و یا با استفاضه بعد از وجود شروط قدم سوم انتفاع موانع میباشد به دو قسمت تقسیم میشود قسمت اول موانع یا عوارض سماوی و قسمت دوم عوارض اکتصابی عوارض سماوی همانند کوچک بودن و یا دیوانگی و مانند اینها که انسان نقشی در این چیزها ندارد به ما خبر میدن که خالد مثلا به الله تعالی دشنام داده پس او کافر است نه خیر کافر نیست چون او مجنون است دیوانه است یا به ما خبر میدن که فلان شخص به نبی استهزا کرده آیا او کافر است نه خیر چون بچه هست. طفل است بله در مسائلی که مربوط به دیه و یا جرائم میباشد می میشود ولو اینکه بچه باشد ولی در مورد فعل و یا قول کفری حکمی بر آنها صادر نمیشود و دلیل ما حدیث یشه رضی الله تعالی عنها که امام ترمزی روایت کرده و آلبانی صحیح دانسته و همچنین از علی بن طالب که ابوداوود و احمد روایت کرده و آلبانی صحیح دانسته نبی صل الله علیه وسلم میفرماید رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتی, حتی يفيق همچنین کربودن هم جزء عوارض و موانع سماوی تلقی می شود همانطوری که در حدیث وارد شده در نزد احمد که نبی صلی الله علیه و salam یحتجون عند الله سبحانه وتعالی یوم القیامة و یکی از آنها را شخصی ذکر کرده که میگوید اسلام آمد ولی من چیزی نشنیدم صحبت در مورد موانع سماوی به پایان رسید و شاء الله در خطبه بعدی در مورد موانع اکتصابی بحث خواهیم کرد بعون الله سبحانه وتعالی وصلى الله على محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تو حمیدانی کے آئی نے تو تو کے زِ رَ گَن دُونی سِ آن کتاب تا بَ زِن دِ قُرآنِ حَکِی حکمتِ اُولای تو ہمیں لانی کے آئی تو چیس زرے گندوں سے زے تمکین تو چیس نسخہ ہے اسرار تکوینِ حیات بے ثبات تسقو و تشکرت صبح تو ہمیں دانی کے آئی میں تو چست زیرے کی حرف اورے بو نے آیا شرمندہ ایت پخته تر سودای خام از زور او در فتوت با سنگی جام از زور او تو همه دانی که آیی تو چیست زیر گلدو نیست زیر تنکین تو چیست می برد پا بند و آزاد و آورد سید بندان را و فغیاد آورد. نوه انسان را پیام آخری حامل او رحمت اللی تو همه دانی که آین تو چیست زیر گلدون سز تمکین تو می از او نارجمان بند را از سجد سازت سر بلند ره زنان از حفظه او رهبر شدن از کتاب صاحب دفتر شدن تو همه دانی, دانی, دانی که آینی تو چیست زیر گلدون سزه تمکین تو چیست دست پی یک چراغ. ستجلی از اومن دادما آنکه دوشه کو باراش بر نتا ستو دی او زهره گردون شکا بینگر آن سرمایه آمال ما گنجتن در سینه تو همه دانی که آین تو زیر گندونه سر ویدم کی نتوچی جست جوی حق بیایید که در جستجوی حق شویم و با کسانی را را بپیماییم که خود و دیگران را به طرفی جنت فرا خوانند. شخصا قبلا بسیار احساس زلط میکردم. الحمدلله بازمان امیرادیو خلافت اسلامی که فعال شد در طریق انترنت بازما تلاش کردم را پیدا کردم. خیلی حقایق برم معلوم شد بعد از اما اقدام کردم که از تحت نظام کفری به تحت نظام اسلام بیم. اینها ها کسان هستند که با کاروان خلافت اسلامی راه پیموده اند خواست بود که ما پشک کردیم گشتیم با استازه هاش ناشتیم با جاهای مختلف هاش و دیدیم شنیدیم و از همه شنیدیم و برای آخره تانستیم به توفیق الله تعالی ما به قطر سیدیم. این همه را در برنامه در جستجوی حق فراموش نکنید جمع شب ها از رادیو صدای خلافت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 اولتنا به گل های آیا شما میخواد که رادیو صدای خلافت را بربرید؟ برنامه فکری تعلیمی و تربیوی. بچه اکا دختار اکای سطری میکنه خلاف اسلام است میتونی بر من بگی که کدام کدام دعاها رو یاد داری؟ دعاینند خوردن دعای از دعای, دعای خو کردن اینها اطفال شیران خلافتند اینها آینده درخشان خلافتند پیام برزویی است که بیاین به خلافت اسلامی و از گناهان توبه کنند بله، بله، اینها گلهای خراسانند که در کوههای خشک جنگلهای جنگل های و آوازهای های حیبتناک صلاح های به فکر و روحیه اسلامی تعلیم و تربیه را به دست می آورند به یک دستشان قلم و به دست دیگرشان شمشیر است در بمبوری یا جنگ یا صدای تفنگ و صدای بمی چیزا را نه، الحمدلله همین نسل جهاد در تمام دنیا قرآن را حاکم میکنند الله،